بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين واله وصحبه اجمعين أما بعد انهم يدرس درس متن تائيه البيري رحمه الله واسكنه فسيح جناته فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبه وتسر وقت وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك او كحلمك اذا حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنتة. أبيات كلا بانج وكلا شيش وكلا من زمية البيري رحمه الله وأسكنه فسيحة جناته. فليست هذه الدنيا بشيء. يعني دنيا شيء زينيس عددينيس. أعز شيء نادره. عموم بول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحه بعوض تزن تعادل. اگر وزنی ارزشی اندازه نز... قیمتی نزالله داشت لما منها کافر یه لیوان آبش هم الله به کافرش نمیداد چون دنیا ارزش نداره هم مغم دنیا نباشه فلیس تهده دنیا بشه تسو او که حقبه تسو او که حقبه حقبه برها از زمانی وقتی تسو او که سخت بهت می یک زمانی و تسر وقتا و یک وقتی دیگر هم بهت خوش می توش دنیاست خوشی و نخوشی داره سختی و خوشی داره ثروتمندی ندارید شما که دلتنگی نداشته باشه باختگی نداشته باشه خسارت و زیانی نداشته باشه مالدارا چینین همیشه دلتنگ ولی که هیچ وقت هیچوقت نیست. و دلتنگ نمیشه چون الله را خیرخواه خودش میدونه چون علم با الله رو داره بغیر همین از قدیم گفتن ما ملئت و حبره الا و ملئت عبره. وقتی علم تو یه خونه بیاد که علم شرعی اون خونه پر از حکمت و عبرت میشه پر از درس میشه پر از قناعت و رضایت به مقدرات الهی میشه مثلا من اسم یوسف علیه الصلاه و السلام و سوره یوسف فوایدش زیاد تو درس میگم چون بحث دلتنگی میشه از قدیم گفتن عالمای سلف گفتن که ما دلتنگ نمیشیم الا اینکه سوره یوسف میخونیم و دلتنگی مون میره سوره یوسف که لازل میشه سال دوازه هم سیزه همه بعصاد. نه هجرت قبل از هجرت یکی دو سال قبل از هجرت نازل میشه در اوج دلتنگی اصحاب یاران همه هجرت کرده خودش تک تنها مونده پشتیبانش هم فوت شد ابو طالب همسرش هم از دست داده خدیجه المومنی رضی الله عنه فوت شده و دیگر مصیبت هایی که دیده الله در اوج اون دلتنگی سوره یوسف را برش نازل میکنه سوره یوسف مجدگانی، برکثانی که سب میکنه در مقابل مقدرات تلخ که عاقبت سب در مقابل مقدرات تلخ چیه عزت و سربلندی اگر یوسف چنین عزیز شد ای رسول من ای پیغمبر من الله جل و علا داریم محمد مصطفی صلی الله علیه و آخر عاقبت تو چنین هم خواهد بود چنین نیک خواهد بود و چنین خوب خواهد بود مشدگانیه وقتی که انسان بدون الله خیر خواهش هست در مقابل اون مصیبت میدونه که اون صفحی که داره برق براش میخوره هرچند تلخی به خیرشه راضی و خوشنود میشه دنیا پسی و داره دنیا تلخی و شیرینی داره خوبی و بدی داره ولیکن علم خیر علم شرعی همش خیره علم نافه همش خیره علم شرعی درمانه علم شرعی علاجه علم شرعی لقمه حلاله علم شرعی حل مشكلاته. چقدر از مشکلات خانوادگی تو میتونی با همین قرآن حل بکنی با قرآن تو میتونی که از جا بکنی چنانچه در اولین درستش آره برش کردی قرآن اگر تو بتونی به عظمتش پی ببری به اون علمی که درش نوفته هست میتونی کل مشکلاتت رو با اون قرآن حل بکنی و غایتها اذا فکرت فيها کفی او كحلمك اذا حلمت اگر نگاه کنی به دنیا و مال و سروتش غایتش آخرش كفهی. فی سایه بعد از زوال خورشید خورشیدی که میخواد غروب بکنه عرب سایه که پس از زوال خورشید پیش میاد میگن فی و قبل از اون میگن غل خرشید که طلوع میکنه اون سایه که ابتدا هست و کم میشه با رسیدن آفتاب به وسط آسان و اون میگن غل خونکتره آفتاب ندیده ولی فی آفتاب دیده آفتاب خورده بعد اون سایه غلبه میکنه بر اون جایی که آفتاب خورده زمینی که آفتاب خورده گرمتر به نسبت اون جایی اولی ولی خب کم کم دیگه اون روشنایی اون تاب تند آفتابه کم میشه این فرق بین فی فرق بین غل فی خصوصا اواخرش سریه به هنگام غروب خورشید خورشید در هنگام غروب سری میره پایین اگر خودتو نگاه کنید به خورشید که غروب میکنه میبینی سری میره پایین اینجا داره تشبیه میکنه دنیا را به اون لحظه آخر سایه‌ای که داره از بین میره با غروب خورشید شب جاش میگیره مثل سایه هست آخر روز و یا میگه که حلمک خوابی که تو خوابیدی تو خواب یه چیزی میبینی بعد که بیدار میشی میگی یالا چی دیدم کجا رفتم رفتم فلانجا برگشتم چی خریدم چی نخریدم ایده حلم تزمانه که اون خوابه رو ببینید توی خواب یه چیزی میاد تو ذهنت و سریع هم میره این چینین دنیا سری گذراست دنیا سری گذراست رفتنیه اون چیزی که رفتنیه گذراست نبواد هم مغمد بهش باشه سجن تبیها وانت لها محب فکیف تحب ما فيه سجنتا اشاره میکنه به اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر سجنت تبیها در این دنیا تو زندانی هستی و این دنیایی که زندان تو هست تو زندان تو دوست داری سوجن تبیح در این دنیا مسجونی این دنیا زندان توست و انت لها محبون و تو هم این زندانه رو دوست داری فکیف حب ما فی سجنت تا چطور زندان رو دوست داری که تو داری در اون زندانی که عذاب می‌کشی و برای تو عذابه چطور برات محل لذت و خوبی و خوشیه جوی تعجبه چرا اینقدر دنیا رو دوست داری دنیا دوستیت برای چیه دنیا پرستید برای چیه چون بعضی جاها انسان از دوستی هم نسبت به این دنیا میگذره تبدیل میشه به دنیا پرستی یبیع و دینه و بعرض من دنیا قلیل دینشون میفروشه به خاطر دنیا این پرستش دیگه. تعس عبد و درهم و دینات خار و زلیل بشه اون برده و بنده پول و مال این استفهام برای طالب علمی که هممغمش دنیاست از باب انکار برش چطور زندانی که تو در خودش اسیر کرده تو رو دوست داری میگه میشه انسان زندارم دوست داشته باشه بلکه انسان باید بغضش داشته باشه سلیمان علیه صلی و السلام بهترین اسبانی را روانه میکنه صد تا شطور روانه میکنه بهترین شطران اینقدر زیبا میدویدن اینقدر قشنگ بودن که از عبادت و طاعتش غافل میشه سلیمان علیه صلی و السلام. اونجا ناراحت میشه که چرا دنیا او را غافل کرد از عبادت الله جل و علا مات شمشیر و برداشت گردن تمامی اون اسوارا زد اسبای گران قیمت عزیز قشنگ و زیبا اون زیبایی که مشغولش کرده بود از یاد الله جل و علا تا اینکه دنیا او را مشغول نکنه از یاد الله بار دیگر شب بعد از نماز عشا که میخوای زود بخوابی خوابی برای تهجد بیدار بشی یه چیزی هست به اسم دکمه خاموش کردن موبایل خاموش کن دکمه داره خاموش کن بذار که سخته خیلی جنگیدن با شیطان زور میخواد زورشو دارید ولی نمیخواید چون دوست دارید زندان رو دوست دارید شیطان رو دوست دارید منم مثل شما فرقی نمی‌کنم الله یه چیز ناممکنی از ما نخواسته یادش عبادتش سخت نیست علمش سخت نیست ولی که ما خودمون رو ناتوان و عاجز میشوری ما توانه جنگیدن با جنیان داریم ما البقره رو داریم من قرأ البقره لا يستطيع البطلة ابطال از جادوگران قوی ترین جادوگران با اون جنیا نمیتونن نزدیک اون مؤمن باشن که بقره میخونه ولی خودت قوت خودت رو نادیده گرفتی زور خودت رو نادیده گرفتی ناچیز خودتو شمردی اینقدر زور داری با یک البقره میتونی هر طلسمی رو بکنی زن الصحابيه ميان نظر رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله ان ابنائي لا يسرع بهم العين ان بچوهم زود چش ميخورن هميشه مريزن رسول الله صلى الله عليه وسلم چی ميفرماندش افلا رقيتيه او كما قال عليه الصلاه والسلام بروقيها شلون بكون نگفت كبيا منو رقيه شون بكونم مادري وظيفت بچاتو رقيه بكوني اين ديگه عاجز نالي نداره بيتابي نداره تو قرآن را داري بگو قران روشون رقیه شم بکن با قرآن فلانه چشم هم زده فلانه تلسم هم کرده خود حاجز نشمار متکی به کسی نباش و صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مستقیمن این زن صحابی را نصیحت میکنه به چی؟ به اعتماد به الله و قرآنش برو خودت قرآن بخون نگفت بیا من قرآن بخونم نگفت به پیانبر تو نفست گرمه تو دمت گرمه گفت بهش گفت قندن تو رقیه تو با من فرق میکنه تو و نزاشتن پیانبر علیه صلی اللہ علیه وسلم این اعتقاد رو تو خودش پیدا بکنه اعتقاد به کلام الله پیدا بود بکنه کلام الله شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء بچهات رو رقیه بکن قرآن بخون علاج درد، تلس، جادوح، چشزخ، حسادته چون ما اعتقادمون ضعیف شده به الله چون علم نداریم به حادث رسول الله اون مجدگانی هایی که داده، اون قدراتی که خبر داده که ما با اون قرآن چه قدرتی میتونیم داشته باشیم اینخصن با البقره و حال که زهرا چون نمیدونیم حسادت ما از پدرورده چشبار از پدر روورده فلانی تسممون کرده حالا برود پیش مردم بشین داد و بیداد طلاق میخوام بگیرن تسمه این نمیدونم چیه فلانی جادوشون کرده. اون تلسمی هم در کار نیست 4 تا دایی دایملله چیزی نوشته که اصلاً اونم چهار تا نوشته ای اصلا اصل مشکل شیاطین جنین که جای خالی عدم یاد الله را پور کردن تو خونه یاد الله تون خونه نیست شیاطری پر شدن تو خونه نه نال از جن و از سحر و جادو تو از یاد الله غافلی و من يعش عن ذكر الرحمن نقيذ له شيطانا فهو له قرين و من يعش عن ذكر الرحمن هر کسی از یاد الله غافل شد قرینش کی میشه شیطان قرون نمیخونی میخوای اختلاف خانوادگی پیش نیاد بین زن و همسر زن و بچه بین شوهر و بچه‌اش و تطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتطعمك الطعام روی زمین رنگ و رنگ میبه بغزا و آشامیدنیست رنگ و رنگ متنبع خوشمزه و تطعمك الطعام ای تطعمك الارض زمین دنیا هزین دنیا تو میخوری الان و عن قریب و عن دهی نچندان دوری نزیک دنیا تو را میخوره تو داری از زمین میخوری یه روزی میاد که زمین تو رو بخوره چطور زمین آدمو می‌خوره ست تو عممن که ما فيها طعمت اون چیزی که هم که تو خوردی گوشت جنت شده اونها فرسوده میشه پوسیده میشه زمین هضمش میکنه چرا در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماین کل ابن ادم تاكله الارض الا عجب الذنب همه چیزی انسان پوسیده میشه زمین رو میخوره جسد پوسیده میشه در اون زمین به تعبیر اینجا که رسول الله صلی الله علیه و آله تأكله زمین زمین را میخوره هضم میشه در اون زمین پوسیده میشه مگر یک جا اونم استخوان او کجا لگن آخره لگن یک استخوان ریزی هست آخر لگن وسط لگن اونجا باقی میمونه که روز قیامت انسان که حش میشه از اونجا گوشت و جان و استخوان دوباره به همونجا برمیگرده بس تو از زمین میخوره یک روزی هم تو هم خودت غذای زمین میشی کود درختان میشی خصوصا درختایی که قبرستان هست بعضی جا هم این کار اشتبایی که هست انجام میدن شیخ ابن عثمین رحمه الله میگه جز محضورات مور محرمه که متاسفانه از عادات غربی ها به ما رسیده گلکاری کردن و درخت کاشتن تو قبرستان ها برحضر باشید این فرهنگ میشه شما نیاد و نام نهادن قبرستان ها به اسم بهشت زهرا و بهشت نمیدونن فلان و حتی تو مدینه میگم بهشت بقیع و نه بهشت نیست قبرستان بهشت نیست قبرستان گورستانه. نبا آدم بهش بشه انسان باید درس و عبرت بگیره از قبرستان فذور القبور تذکر کم الاخره بری یاد آخرت باشید به قبرستون نگاه کنید شیخ ابن عثیمین رحم الله میگه, میگه چی یاد از آخرت باشه زمانی که گلستان باشه و گستان باشه قبرستانمون اون تفریگاهه قبرستان نیست قبرستان برای عبرت درس نه برای خوشگذرانی نه برای تفریح پنج ها همه جمع میشن اونجا برای تفری بعضی جا هست ها جاشون قبرستونه بدت تخصیص دادن عبادتی بروزي بدأت عمو تكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام شبه جمعة خاص براي تهجد قرار نديد و نه روز جمعه براي روزة جمعة و ميخاد ديگر روزا باشه. چه براي نماز، چه تهجد، چه براي زيارات قبرس نه فرقي نميكنه. روز عيد خاص قرار داده بعد عيد ديدني بعد من قبرستون براي چي؟ بدعت. فرناكو كار دروسي داري انجام ميدي. بدعت. و كل بدعه ضلالة, ضلاله في النار. ان وارد داريد نواب کنه چه zarar آسیب میرسونه هم اون نووری دردید رسول الله صلی الله علیه و آله قبرستون کی می میرفتن دم پای هم حتا بیرو میوردن و میگفتن به اصحاب روی قبر نشینیدا برای چی برای که فرو نریزه اون قبر بر سر امیت آدابه قبرستانه برای چی حفظ حرمت اون جسد زیر خاک الان من میام درخت بکارم ریشش بره توی اون قبر بره از جسد امیه تغذیه بکنه من چیکار کردم کار خوبی کردم رسول الله صلی الله علیه و را به ما میگه حفظ بشه نشینی در یقاب فلان نکنی بعد بیا بیام درخت بکاریم بدتر از اون نشستن ما اومدی ابرو رو درست کنی چی شورا داری کور می‌کنی قبرستون جای درختکاری نیست اینو گفتم تو حاشیه البته چون واقعا ما مبتلا هستیم ما مبتلا هستیم بین بی بدعت حرمت میت یعنی ما در زندگانیمون و مرگمون حرمت داریم حرمت ماها باید حفظ بشه یعنی ما انسان ها شرف یعنی دین ما اومده آداب و تعامل با زنده یادمون داده و با, با مرده هم همیتون مردی هم آداب داره در تعامل با اون مرده بشوری کفم بکنی روی دوش هم بکنی نیفته برای اون مید که بلند میشه نشینی بلند شی همین ها حرمت ها هست آداب تعامله حتی با میتش آداب داریم اخلاق داریم و تعرا این لبست بها ثیابا و تکسا این ملابسها خلعتا و تعرا این لبست بها ثیابا اگر راضی شدی به لباس دنیا نه لباس تقق دنبال این شدی که لباس قشنگ و پوشش و از مال دنیا باشه برید ثروت مال جمع بکنین. بدون که توی یک روزی این لباس از سن در میارن و تعرا لبست این لباس از سن در میارن بد کفنم دورت میکنن تو قبل میذارم هیچی از این دنیا با خودت نمیاری و تعرا اگر هم ممد فقط مال دنیا باشه ال نباشه دنبال فضیلت اخلاقی ایمانی دینی نباشه. فقط همت مال جمع کردن باشه بدون که هیچی با خودت نبردی به قبرت بگورت هیچی با خود نبردی نه دنیا و نه دین خالی رفتی و تکسا این ملابسها خلعتا و تکسا پوشیده میشی با چی پوشیده میشی؟ و لباس تقوی ذالک خیر با لباس تقوی اون جامعه جامعه تنت خواهد شد اون لباس اخلاق و دین و علم و این شرف و این لیاقت را قهی اف نز الله جل وعلا کل لباسی اسوی خودش را جامعه قلبت قرار بده و تو کسا این پاداشه پاداش آن کسی که علم را بر دنیا ترجیح بده و تو کسا این ملابسها خلعتها همه بحث این ده تا بیتی که خوندیم بحث برتری علم بر مال دنیا و اون چیزی که در دنیا هست حالا وجوه برتری مختلفی گفت ولی خب بازم این بحثا را خواهد گفت از باب اینکه قافل نشیماس قدر علم و از منزلت علم بعد از این که الان بحث این فرقا بین علم و مال این مثال ها رو زد الان درس عبرت دیگری به ما میده میگه در پنجاهمین بیت و تشهد كل يوم دفن خلن کانک لا تراد لما شهدت و تشهد كل يوم هر روز گواهی بر مرگ کسی خصوصا دوستان و نزدیکانت دفن خلن خلیله نزدیکانت دوستانت احبابت کانک لا تراد یعنی مثل که تو دیگه این چین روزی نخواهی داشت یعنی یک این روزی که بر سر اونها اومده بر سر تو در نخواهد اومد تو نمیمیری کانک لا تراد و لما شهدت. اون چیزی که تو دیدی بر سر دوستانت در اومد بر سر تو در نمیاد نه بر سر تو هم خواهد اومد کل من علیها فان و يبقى وجه ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان همه باید بمیرن فنا بشن نابود میشه پن بگیر اندارس بگیر این همه مردن تو هم خواهی مرد برای مرگ چی داری چه جوابی داری این هم توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله تذكروا هادم اللذات و در واقع اكثر من ذکر هادم اللذات زیاد یاد مرگ گوشید کسی را دیدید از دنیا رفت گفتم بیاد نماز جنازه بخونید به خودت بگو فردا،, فردا هم منم روی منم همینطور نماز خواهم کن یه چیزی است توصیه می کنم از توصیه یه قاعده کلی از کم تو دین و اسباب این میگم که حق مردگان ما هست به گردن ما که سر جنازاشون باشیم و دعای رحمت به اونها بکنیم بدون کوتاهی کردین نرفتی سر جنازه کسی بدون فردا سر جنازات کسی نخواهد اومد یکی از حقوق اون مرده هست به گردنت نماز بخون قبرستان برو اون قیرات هایی که ام رسول الله وعده داده، مجدگانی داده از همین الان برای خودت پسنداز بکن یک قیراتش با نماز خوندن و قیرات دیگر با حضور در قبرستان اینا فراموش نکن حقوق مرده است این آداب تعامل با مرده اینها رو کردی فردا امیدی هست که کسی هم برای خودتم دعای رحمتی بکنه سر قبرتم حضور پیدا بکنه ولم تخلق لتعمورها ولكن لتعبرا فجد لما خلقته ولم تخلق ولم تخلق لتعمورها برای عمران زمین رستگاری و جاودانی روی این زمین آفريده نشدی ما ما خلقت الجن والانس الا ليعبودون تبرئ عبادة الله جل وعلا أفريد شدي نبري عمراني وزمين والسربات والمال كاسك مال بدنيس ولكن مالك ترازي هذا الله غافل بكنا هذا علم غافل بكنا والمال شر خيري تشنيس بري مال و بري الدنيا خلقاتنا شدي أفريدنا ولم تخلق لتعمورها ولكن لتعبورها بري عبور أفريد شدي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل عابر سبيلي عابر در دنیا باش مثل کسی که از این دنیا آمده راهگذر میخواد رد بشه در دنیا راهگذر باش رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند لتعبرا لی ما خلقت بس جدیت داشته باش همت داشته باش در اون چیزی که براش آفریده شدی در عبادت الله جل و علا جدیت داشته باش فجد جدیت داشته باش در, در طلب علمت فجد ما خلقت برای اون چیزی خلقت شدی و ما خلقت الجن اللی و الانسان الا ليعبدون باب شریف ترین عبادت علم امام تو گفت در حدیث سالم طلب علم فریضه على كل مسلم طلب الفرز بر هر مسلمانی خصوصا وضو گرفتن تو وضو نگیری نماز نمی تونی بخونی وظیفهت یاد بگیری چطور وضو بگیری وظیفهت یاد بگیری چطور نماز بخونی نخونی بین الرجل و بین الكفر و الشرك تركه صلاه بین شخص و بین کفر و شرک چیه ترک نماز خودت میخوای نجات بیابی واجب بر تو فرض بر تو که بیاموزی چطور نماز میخونن و با چطور باید نماز بخونی تو برای این نماز آفریده شدی برای نماز آفریده شدی برای این که نماز در جماعت بخونی آفریده شدی و این هدیمت فزده انتهدم و حصن امر دینک مستطعته و این هدمت ای دنیا دنیایی که تو دنبال آبادانیش هستی عمرانش هستی اگر نابود بشه از بین بره مال باخته شدی فزد انت حدما دنیا بر سرت خراب شده تو خراب کن چطور؟ با اهمیت دادن به امر دینت با علم بیا رو به بی علم بیار علم اون رنجت اون دردت را چیکار کار میکنه؟ پانسمان میکنه درمان میکنه منظورش این نیست که اینجا مثلا ما برداشت بکنیم که اگر مال دنیا را داریم ترکش بکنیم یعنی دنبال مال دنیا نباشیم نه و این هود متفزده انتها یعنی تو هم بیشتر خرابش کن یعنی مال تو نابود کن نه این برداشته است مقصد مقصد این نیست چون رسول الله صلی الله علیه و یاد میمون داده در دعاها اینکه این دعای داشته باشیم اللهم اصلح لي دینی التي هو عصمة أمري واصلح لي دنيا ي التي فيها معاشی بر لا دنیا مون اصلاح کن نه که خرابش کن نه اینکه ما خودمو خراب بکنیم نه دنیامونم مون امر الله توفیق بده که اصلاح بشه هم دینیمون درست بشه هم دنیا مون اصلاح بشه که انسان گدا نشه انسان فقیر نشه انسان دستراز کسی نشه هر چیزی حق و حقی داره کار بکن ولی اون کارت سبب نشه که مشغول از علم بشی برای علمت هم وقتی بذار همونطور که برای دنیات وقت گذاشتی رسول الله صلی الله علیه و بیکار نبود زمانی که خدیجه رضی الله عنها زنده بود تجارت میکرد با مالش و هم شریک بوده و بعد از وفاتش گله از شطور داشت و گله از بز و صدقه میداد ولی سرمایه‌اشو نگذاشته بود رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل جود و کرم بود ولی خب سرمایه‌اشو حفظ کرده بود مثال میزنم به تو حدیث در ترمزی ترمذی صحیح درست رسول الله صلی الله علیه و سلام صدقه میداد و یا شاید در منزل آتش بلند نمیشد مدتی یک ماه یا خرمایی پیدا نمی‌شد این به خاطر اینکه زیاد صدقه میداد یا بخاطری که مالش رو رها کرده بود در مکه بعد از ولی که مالدار بود رسول الله صلی الله علیه و سلم ثروتی داشت سن روزی مهمانی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مهمانانی اومدن بعد چوپانش میاد چوپانی داشت برای خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد فرمودن اون چوپان گفتن که گوز جدیدی به دنیا آمده فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان لنا غنم 100 كلما ولد ذبحنا مكانه اخرى او که مقال علیه الصلاه و السلام صد تا بزر داریم منظور خودش داره یکی به دنیا آمد یکی دیگری را به جاش زبت میکنیم سر میزنیم ای نباشید یعنی. کرم رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیخواد مهماناش شرمنده بشن ولی که این که این دنیا تو را مشغول بکن از یاد الله این مزمومه این بده ما برای عمرانی و آبادانی دنیا مون ما آمدیم آخرتمون رو آباد بکنیم و آخرتمونم آباد نمیشه جز با علم. وغترهمني كينجا ميگه وحصن امر دينك مستطعت حصن امر دينك دينت محكم نگه دار خراب نشه دنيا خراب بشه اشکال نداره بزار دنيا نداشته باشي ولی دينت رو از دست ندي سرمایه دينته دي. سرمایه دينته دينت از دست نده دينت رو نباز ولا تحزن على ما فات منها اذا ما انت في اخراك فزت ولا تحزن على ما فاتك اموتك الله جل وعلا در قران میگه لكي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تأسف نخور اندوگین نباش در مقابل اون چیزی که از دنيا از دست دادی دنیا دار فانیه كل من عليها فان خصوصا زمانی که چی؟ اذا ما انت في اخراک فستاد خصوصا وقتی که تو برنده آخرتی تجارتت آخرته تجارتت علم شرعیه تو علم شرعی رو داری همه چیز رو داری تو نیازه به سروت و مال و دنیا نداری گنجت سروت این انفوز این پیروزی اگر تو علم را داری سربلندی پیروزی علم نداری سربلندی سی پیروزی سی جهل انسان را سربلند و سر پیروز نمی‌کنه علم است که انسان را سربلند میکنه و پیروز می‌کنه فلیس بنافع ما نلتا منها من الفانی اذ الباقی حرمته فلیس بنافع ما نلتا منها من الفانی دور فانی است فلیس بنافع ما نلتا منها هر چقدر از این دور که فنا میشه به دست بیاری برات سودی نداره اید الباقی خورمته اگر اون دار باقی رو از دست دادی، جهل هر هرچقدر ثروت داشته و مال دنیا رو داشته، آخرت که نداره اون مال میخواد الان چه کار بکنه؟ فرعونم هم, هم میتونه، نمرود هم, هم میتونه. آخرت که ندارم مالو میخواد چه کار کنه؟ دنیا بداره چیشو الان میخوره؟ فلای سبناه فعه. ما نل تامینها بدادرد نمیخوره از دنیا چیزی که بدادرسوردی اگر آخرت تو از دست داده باشی، بس آخرت تو داشته باش تا دا دنیا رو داشته باشی. ولا تضحك مع السفهاء يوما فانك سوف تبكي ان ضحكت سفيه نباش هم چون اون نادانان و جاهلانیکه در این دنیا خوشگذرانن و میخندن و دنبال تفریح و خوشگذرانین ای طالب علم دنیا برای تو برای خوشگذرانی و خندیدن نیست ولا تضحك مع السفهاء اونها سفیهان اونها نمیدونه هدف از خلقت و آفرینششون چیه تو سفیه نباش ولا تضحك مع السفهاء يوما روزت مثل روز اون نادانان و جاهلان نباشه و سوف ک سووف یه روزی میرسه که تو میگری کارت میشه گریه کردن اگر اینجا با اونها خندیدی مجرمان و تبهکاران میخندن ان الذيین اجرام و من الذيین و یا حون بخندن و خواهنددید کی به کی میخنده اونجا روز قیامت تو چطور میخندی با اون کسی که روز قیامت الله بهش میخنده. مجرمان و تباهکران الله بهن میخنده روز قیامت که دیدید حق واقعی بود تو هم میدونی که الله جل و علا به اینها میخنده روز قیامت چرا شریک جور میشی میری با می آنها با آنها مینیشینی و الله را فراموش میکنی و با, با آنها مشغول میشی با اون مشغولیتی که اونها دارن و از الله غافل میشی ای طالب علم تو متفاوتی فرق داشته باش نباش مثل اونها اگر مثل اونها خندی دی روز قیامت گریه میکنی ومن لك بالسرور وانت رهنم وما تدري اتفدى ام غللت ونسخه شما غلقتا وغرقتا ومن لك بالسرور وانت رهنم الان تدري خوش میگذراني در دنيا خوشي خوشي دنيا را بر اخرت ترجيح دادي روز قيامت مياجله والله هميستي وما تدري اتفدا جزء اونها هستي که از جهنم آزاد ميشن او غلل تا غل زنجیره یا به زنجیر کشنده میشی نمیدونی رها میشی از جهنم آزاد میشی یا در جهنم به زنجیر کشنده میشی و من لکه به سرور و انت رهنون تو هم رهینی چطور دل خوش کردی و تو زندانی و رهینی در این دنیا دلت به این دنیا خوشه این دنیایی که آخر عاقبتش فنا و نابودی هست و در اون دنیام نمی دونی که از جهنم؟ الله جل و علی نجات می یابی یاب از زنجر کشند می شی؟ شان الله جل و علی بس می کنه جهنمیان و اذ الاغلال و في اعناقهم والسلاسل يسحبون جهنمیان غلوزنجر در قردارن چون کشون کشون بترف جهنم کشوندمیشان و ما تدري اتفد؟ ام غلقت؟ غلق؟ غلق رهن؟ كسى كه اسكاسي پولی میگره و رهنی میگذاره اون کسی که رهنو نگاه داشته اگر یک مدتی میذاره اگر اون وقت پولمو نیووردی این رهنت مال منا شرط گذاشته براش غلق مدت زمانه برای کسب اون مال رهن شرطی گذاشتن یک وقت و زمانی از رهن در مسرع اول شروع کرد به غلقش در مسرع دوم میگه چطور میتونی تو خوش باشی و تو خودت هم مرهونی خودت مرهونی مرهون کجا جهنم نمیدونی این جهنم تو سزاوارشی که در اونجا عذاب ببینی غلق جهنم بشی جهنم صاحب تو بشه تو را در آغوش بکشه و ما تدریعت افته و نمیدینم یا اینکه آزاد بشی از اون جهنم شرطش ایمانه شرطش تقواست. در صورتی تو آزاد بشی که اون تقوا را به اون علم شرعی حاصل بکنی علم شرعی را کس نکردی چطور میخوای از اون جهنمی که تو مرهونی شی و ما منكم الا واردها همه وارد وارد جهنم بشن از جهنم عبور بکنن چه تذبینی هست که تو از جهنم عبور بکنی در بیای به همین قد اکتفا میکنیم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله عليه محمد و اله محمد